قال <سؤال> اللهم صل على محمد وعلى ال الله عليه وعلى الرسول الله من هر فکره جمال هم اون بود که در کلمات عبدالدارون مسئول نسبت داده شده و رو به اصطلاح به و صحیح نشده اما چون من احیات می به هر حال بیرشون نسبت داده شده به اون مسئله سریع داری من بوده بدنم میاد که با در در گرفتن شواهد تاریخی اون چیزی که بیشتر من شده ایچ ما بود عبارت برنامه بود که دومی به استداف برای حل مشکلاتی که در جامعه با شروع برونی شدن کرده بود و اون مجمع مشترکی بود که حدود سین احر بودن اون زد از مهاجرین یا اهل مکه و اون تا از انصار یا اهل مدینه و مسائل جدیدی بود که مطرح می شد و مسائل مهم با آنها مطرح میکرد و بعد از گیری با آنان اینکه اهل و ام با این موافقت هم روزی به صورت مهاری محسوب میلایم به صورت اعلانی اعلام میکرد این هست شواهد تاریخی در این مسئله اراضی ایران نوشتن که یه مدتی بحث میکرد که آیا اراضی که به صورت برنامه غیر مکوب هستن این ها هم تقسیم بشه به این یا نه بکنن بکنند که به خب دیگه میگهتن تقسیم بشه به دیگه میگهتن نه مثل به چون دشتر اسلام بود فرد کرده و اونو پشتبانی مالی برای دولت اسلامی بدونه که بعدها از به نام محرازی خباکیه یا زمین های درامت زار زمین های بود که بنا که کسی نشه و حتی خود افرادی که در مثل اون وقت در ایران بودن که البته اون وقت ایرانی بودن چون قیسون پای تخت ایران بود خود اینها هم کار بکنن دو زمین و منافع زمین رو به, به صداقه خدمان داده بشن خب این رو نشتن که از همیتا همین مسئله تدوین سنن رو که همین رو ممنونی و که سنن رسول الله رو تدلیل بکنیم باز شده که ایشون رو در همین مکمه مشارتیش مکرد کرد و دیگه نهاییش این شد که سنان فیلمبر تدلیل نشد نشه. سرم حبارتی داره که مشنا کمشنا از کتاب دوستی دوره باید نداشته شد یه حال تکرار باید این کتابی سپیش که بعد از خودهاد داروی خداست خاصی جزوه طورات نیست جزوه کتبیست که احبال تنظیم کردن که ما به اصطلاح در زبان فارسی لبز میشنا بازان میشنا شرح مرد شرح مرد شرح دو شبه محبوبه شبه دو هست به نام ترمون ترمون بادره هست و ترمونه به اصطلاح مال فلسطین خبه رو میگه و مثلا برمه عمر نظر کون آشنا بود با آفرانی یهود نظرش این بود که اگر ما سننه به عنبر رو جمع بکنیم یک چیزی که دیگه میشنا خواهد شد در مقابل توباز به این صلاح نیست و همین را اعلام کرد و جلوگیری گیری کرد از تدمین سنن به بر درست کردی بعد از عمر هم با این که هم میتونیم این فکر افتادم محسوس شد به که کتاب اونان قضایی با سنن نویشن حکر خب معروف اسلامی زیر بار مرد تا عمر مرد و عزیز توضیح چه در سال سرگه هجری به فکر افتادم که سنن رو جمعه میکنه. یعنی از زمان این جوگونه این محسوس کیونه نه اینکه که نوشتا داشتند از اومد می نوشتند نوشتا شدن تردوین سنن اون که از رسول الله و هست در موارد متفتشه جمع بشه و دستاندی به و یکیاب بشه که با مرگ یا خوش شدن اومدن بود این طرح نابس نیه عملی نشد طرح تردوین که اومدن از از ایز پیگیر شده یک شهر خواست قدر مواردی هست که نشون میده که در موارد جدید و با مشکلاتی که برای دنیای اسلام مخصوصا با پتوخاتی که شد و جاهای جدید و افکار جدید به صداقه مسائل مساره مستقلات مشکلاتی که شد. این دو رومی به صداقه این حاکم دو رومی اعتقادش نیم بود یعنی عملا اینجور یا خودش تصمیم میگه به اون آراب و بیاضات و خیالات خودشی که میگو که این منچه بیاض در اسلام شد. شد یا این رو در های مجمع مشورتی من ترمی که این منچه اجماع شد تقریبا اجمع منچه اش اینه درده ها برای در توجیه مطلب سعی کرده به بالیاتی یاد راستو با آیدات یا به بکنه هر بادن که انصافا وکه رو خنده در این نگاه می کلمات بزرگانشون رو حس می که این مطلب خیلی ضعیفه برای بله این اون عصف مطلب رو بیان نکنه اگه اینجور باشه حالا ما مقدر اینجوری مقدر باشیم که عصف مقدر این بوده مساعد یدیمی بوده مساعد تازهی بوده در اسلام مقدر نشده و مصنون ها آزایی ها مسئول مرکز داره یا مهمونی خلیفه مولیه هم هرچی اصطلاف مورد ایشون تقسیم بکنه به این تقسیم یا مجلس شورا مثلا تقسیم بکنه به این تقسیم گیری, و تقسیم گیری, این تقسیم گیری و قبول در بگیره این رو بشه این رو بدازت شرعی بدیم به که شرعی محدود حکم حکومتی یعنی به جب این محصه یکیم آوایان انجام بدن اگر این به جای این کار به اجماع رو کنم مثل ایت شورا ایت سبیه که میرا کشور در و اگر می اکثریت ایچی در میاد، بقیه هم برای اکثریت احترام می این ها به جای این بحث که در اصول بودن رو بردر فیر به جای این حرف به نظر ما اجماع رو محدود می اجتماعی، به مسال اشتماعی وارد نشده او از پض جامعه اسلامی قبول بکنم محدود زمان خودش نه خارج از این اگر اینجور بود با این تناوضات و مشکلات و ضرف استدلال از عدلهای که دلالت نمیکنه برخورد نمیکردن حتی کلامی کلامیم که از عبدالله مسعود کردیم پن عبدالله ابن مسعود میخات که پیغمبر در مسئله خلافت به اداره جامعه چیزی نبراه به باید این اخترام پیلم در که فرم باید تو جامعه پیاده بشه که دوانه این طرف براید فرم نبراه اما حالا چی اونو جامعه تقسیل بکنه اون غیر به فقیق ممکن اون که نون سال نیسوادی باشه. باشه. لازم با استحانه به علما و با گرفتن فرم اونو پیاده بکنه حالا خودش هم فرسا نداده این طرق کنیز که اما نحل سنن دارن یه نحل سنن دارون این مذهبی و غیر ملتزمینشون اونانی که خیلی ملتزمن این از که باید یک کسی فرق رو در جامعه پیاده برون و مخصوصا در اصل خلافت چون پیغمبر کسی رو ما رو یه نهبه دیدن مثلا یک کفاق صحابه شد برای این که مثلا اولی دو سرکار بیدن خیلی خوب و ما دویو دارد کردیم که این مسئله که خون گفته با قبیه انتخابه ها نمیزازه با این تصویری که ما انتخابه میزازه بیگه خداون مثلا اینطور تو براداد که مردم جمع بشن و در طریقه راست و دو دور اولی انتخاب بخنن اولی هم مسیحیت کرده دو برمی چونه انتخابی هم بود و که مردم قبول برو میکردن و این مسئله هم هست درش نکسی نیست میانم هم برم دو با میاد دو شد قرار داد بعد از همه شورا باز مردم قبول بعد شد که جریان امیرالمومنین بود که به صدق به بامه هم برد بودن بعد هم جلگان معامل بود که ولی به داره سهدی ولی یه در زمان خودش به حدی تو بردم همین جریان رو به داره سهدی بگیم و سنوها موند همین به داره همین که معامل در هر 50 کلا کویتانیام، 100 و بازشو، 50 میاد در مسرو، 50 کویتانیام که در ترتیب هارون برای تا از دکچه آشپز سرگیاه کارگری ها داریم زیرا به یاد میاره، یکی بانوانه میتی، یکی نه یکی، تا خب به این حرفایی که اینا در حسول مطرح کردن میگن مثلا مسئله اینه بود مسئله اینه یه مسئله اجتماعییست مشتراتی پر جامعه پیدا میشه، یا حاکم نظر ترجیح میکنه یا مجلس شورایی، یه حکم محدود اون زمان نه حکم اولی حکم صانوی حکم و دایره اجماع رو میوزه مثل امروان شورا بگم مثل این که همه ما و آهو موسیمون خسنن که آهوه اندالله پس اشکال احساسی به اهل سنت اینه که کاری اونجه بردی از صحابه گفتن یا کردن این رو عنوان یک تگاهست حکم واقعی ایرامی گرزن این کار خلق بود این اصل این کار خلق بود این رو یک حکم بادری از کنم این خب این عنوان یک حکم ن که خوب کنید از درمین خصوص ایران و این محسن هر جنسان ولیزا از درده از اکرسوندن این ثابت نیست بعدم این همه زمین خرد شد این همه کشه هر خرد شد قسمتای ایران و که آوار بود نسل ایران آوار خودستان رو جزه عراضی شده چه عراض نهند خودش کماز ایران جزه عراضی هست توش کماز مناطق بیگردی مثل مثلا مناطق حسیهی بودن مجلسی بودن زردشتی بودن این ها گرفته شد با جنگ وقت زمین ها شون با خانه حرازه اشتراجیه باشه محامل نشد خب این اینجور بگید یعنی حکیما رو نه برای یه حکم قابلیه الازی قرار بدید یه اجتماع محدود برگرده بر احکام حکومتی و محدود باشه به زمان آجه و این عبارت عبدالله رو مسئول هم میسوده با اون کاریم که مجلس و صحابه قبول میکردن با او هم میسازه پس اشتال اساسی و بعد علمای احل سنن این این مشتقال برمه بردن که اصول این هم راجعه به بحث کردن و تحقق به کجاش مضر کجاش مزرد چیه آیه مبارکه رو بردن این بود کردن در هستی که به هیچ وجه مثلا کلن آیات و و این اجماع اصطلاعی تناسب نداره اون مسئله اقلی هم که حدیس باشه اون که خوب خب. ممکن است در میان اومت و حیث و سواب باشه اما مسئولین اجاوی صالح ندوشن وقتی از برگاه انصاف اگر اینها قلقان اهل سندن کار رو که صحابه گفتن مثل اکلا میمسگو یا صحابه انجام جامعه در نصد مثل, مثل از این گرومی اینها میزدن به احکام حکومتی و بلایی و بغف رو تا محدوده به زمان حاکم این هیچ مشکل علمی هم نداشت هیچ گرفتاری هم نداشت هیچ به تنابض هم برکر نمیکردن. کردن دیگه نیازی به احسانی که در اصول مطرح کردن جاش نبود و این بحث‌ها اساساً از داره خارج این راجب جبه بلایی با چرا داشتن که داشتن اما مثلا هر کس مثلا قرار کاری که کرد هر هم در یا به هم مثلا این اراضی خارجی رو هم البته اصلا نه از هم نمیگه نه اراضی این حکم الهی سوغینی تیم والله نظر ضمن رضا و اونم نه شده که دو که اگر من در دین یه دیگه‌ای فرق بکنیم همون کار کاری می‌کنیم که رسول الله در خیبر انجام داده یعنی کاری که در ابراه کردن ببینیم برخوردنین در صحه صوم این احادیث البته در طباهای ما هم بحث علازی به بوختن اونم واقعی گیرند تفاوالم بر همین همون تفاول مشهور احادث توی یه ما وجود داره و همه همه هم فرس نه اصلا. در قرن یازده مدتی که اعلاق دست سخمیه فرس شد یه دفعی این بحث پیش که در ارازی اعلاق چپار بکنی مثل برگون جامعه و فرسه بودن به یه جمعه ترکیب همون فرس مشهور رو در مقابل برزه بخنه این مه که مردم میشه بقابل سمجر که و اون بب نیست. که عرصم کنی رساله در شراش در اون زمان روشید شد محوم رد رده سردیدی داره خود محوم محقه داره اون شیف قتی که در ساله که رد او اون ایشون رساله داره رد برقیم کرده علا این بحث در میان شیعه به نحن مناقشه در اصل مطلب در دهم یاده هم در هم یاده هم مطلب شد زمان اما تا ارسال ا ولی ما بیاییم این مساله به رو اینجوری بگیم هیچ مشکل خاصی به نظر من که با مشکل خاصی به نمیشه و این قداستی که رو که ما اجمار روزن مصادر تشکی بدونیم و در عرض کتاب و سنت بدونیم دیگه خود به خود خودا جایی این به احسانیست در اما بیان خودشون میگن ما هر اتفاقی نظر بدیم اصلا نمی کنه یعنی درک شده و و با این برای من هم روشن شد که اجماع منقول به خبر واحد نمی چنی ی ارزش نداره این واسه به اجماع منقول به خبر واحد یک زاویه زاویه دیگه غزالی بود که گفت این اجماع فقط کتاب و سنت بر برداره و خبر واحد ثابت نمیکنه یک ای زاویه زاویه دیگه خدایای ما بود که اجماع منبول به خلافه واحد نشون داده که خبر نمیشه نیست چون اول به نفع هر هست که از سنواره کوی یه راهیم با این که ما عرض کردیم اجماع به خلافه واحد چون باید اجماع بالاست مسائل حکومتی رو پاسخ دیویی سال بعد اولامو اتفاقی نه از این راه هم میشیم اجماع به ارزشی این راجع به خلاصه کلام راجع به اجماع در کلمات اهل سنت و اما در روایات ما و در مجموعه به اسطلاح ویلازهای شیعی در روایات ما دو سه گور وجود داره که باید تفتیق شد یکی این که راجع به روایاتی که از امان و امان با اشاره ای بین حدیث لات اجتماع امتی الاخره ان علی ضلاله نداریم احتمال داره اون زمان من مشهور باشه درسته احتمال داره چون حدیث احتمال داره به حال اون رو ما نداریم چرا که ما اینجوریه اون نداریم اون که ما داریم از علی معلی و سلام دوستیو تعریف هست یکی از همین تعریف مشهور روایت عمر داره خود ویان شهر رو به از سابه و در اشار در ناظر فه اینا موهیمه که اجماعیست اون لاره بفی این بنابراین که اجماع بنابراین تفکر هر جور که اجماع بود لاره بفی این مدار این مورد ام برسه انشاءالله تعالی چون بحث شهره صاحبا من اینوز یه اشاره می کنم اشاره تفسیرش رو بعد شما ها که تکنش بیشتر وجود به ذهنتون بیان من هم از کنم در همی کلمه فهمتر مجمع دارم احتمالات زیادیست احتمالات محبودش در حاضر تصاورش که در حاضر سر تا بیست احتمالیش چون طوضیش اینه که فار فهمتر مجمع یا تعلیل از یا برای تقریب من یا برا حکمت نه علت م علیكل تقبیر یا عقلی یا اقلایی یا تعبد شرعی شارع بخاد مار تعبد بده و یا یک نوع عمر عرفی عمومی ات هالا نه اینکه خیلی اقلایی الایی باشه ما مثالش عرض کردم مثلا مرهوم شهرصدو نسخها از کتاب اعلی در اختیارش بود که از خاندان برگی بیشون رسیده بود یعنی اینکه از نروه های برگی از پدرش از پدرش، از احمد برگی از پدرش محمد برگی از کوچه امودید به خود این نسخه کتابه از خاندان برقی بود اون دو تا برگی اول که در و کسر شناخته شدن در این ناشوستن خب شاید دیگه این اون رو دوور بکنه الانم ما داریم مثلا بگم فلانی به خاندان علمه مثلا اصفحان یا شیرازه رای ممکنه در این خاندان یا فیض کاشانیز و ملاسللاته بیشون نقریه مثلا شارم حجمه ملاسللات که خوابی دارم در خانده شمی که مثلا خط ملاسللاته این با مصابه خط فیض کاشانیز یا خط احلاقیمه اونتا این ارک اجمالاً این رو قبول میکنه ارده آرکه اوکران و محصه این می کنم خب, خب این آقا که خب این کی گفتی؟ آقه نویشه می شون سی شاید اشتماعات می داشت خیلیش دور کرد هفت تا موندازگاه راسه بدارن احتمال اشتماع این رو ما همون پس یا اقریز یا اوکرازیز یا شرعیز و یا غرفیز و حلاکه کلی این طبی الاسلام می د یا داره جنس، یا داره اخده چون اخده یا باشه صحبت سر خبره، نا مطلح اما جنس که باشه مطلح مجموان حاله که داره ایتی. اما داره صحبت سر خبره خبر خبر شازن، خبر مشهور فه این نا مجموان علی حاله، اگر داره باشه یعنی خصوص خبر مجموان حاله این سانسو شده این رو خود مطابق و علاقه کل احتمالی با مراد از مجمله یا همون لفظ گرفی چه یعنی اتفاق مستقباله یا مراد مشهور چون اینجا که قبلش مشهور بود خود مرشه رو بیه هست مشغوره نور درسن. درسن یا مراد از مجمله مشهور یا مراد از مجمله یعنی اتفاقی یا یه معنی که شامل هم دوشه حالا کل تبدیلیم به ازلا، به لاری بفی، این لاری ممکن است لاری بفی، حرفی بشه، ممکن لاری بفی، شریفی بشه، ممکن لاری بفی، هوالی بشه. حالا ممکن است لاری بفی، هر حرفی بشه، یا یعنی نه فی نصب لاری بفی، ممکن است لاری اضافی بشه. یعنی خبر مشهور مشکور به خبر شاد لاریوفی نه این از سداریوفی این هم برده در علم گفتن برده که لاریوفی اضافی یعنی چی؟ یعنی این غلیز گفتن اگر غیر از این مردیه که در این خلیصان به دیگری هم بود به هیچی که احد الخبرین به دیازه و آخر لاریوفی بوده پسو کن احد به قیاس آخر راهی بفی ویدون داره همون اون یکی کی لاری بفی این مردیه را هم قبول میکنه پس اینکه من میگم مرد اضافی یا لاری بفی احتمال چیزی روزه سر و احتمال در میاد این حمیث مبارک علا تغییر قبول که ما قبول داریم توضیحات فقط شدی این ظاهره بشه و تعبیل هم اغلادیه علیه جام هم اهل جرکلیه مجمعه هم مراد مشتوره لاری هم مراد لاری بسیه و مراد از لاری بسی هم حقیقیه نه اضافی در این بین این اکتومالات سراب بازی که دادی شد اینشالله از خیلی تایید من اجماعش ارسیم که منطین است بایتونی تفکیه بیشهی رو کنیم و بعد دار این مکنونه احتمالات روی این کلمه و به ذهن ما که این چون در بحث شورت به این حدیث تمساک و جوازت بایی اونجا اثبات این مطالب رو ارسا هم گرد برای تحلیل تقریب و اونه نیست سالی هم تقریب تعلیب و قلعایی تربودی نیست اروفی نیست اقیلی نیست این فرطه اکتمالی زیاده سال سهر هر برای حد ذکریه اون خود به من شهر اونه نه مطلق مجمعه سال سهر یا رابع مجمعه مراد مشهور در مقابل شانس خامسر لا ریبتی مران لا ریبتی خوب الان نیست نه عقلی نه شعرین برای سادسا لا ریبتیش حقیلیست اضافی نیست نه این که لا به اضافه او. ولی اضافه خیلی اگر من بیسری گفتم خیلی این آثار مهم داره ولی اضافه این خبر به نظر ما در باقی ترجیح نیسته اون آقای چون یاد به اضافی گرفتن به ترجیح می این خبر در باب حجیت خبر منصوب همه این در باب حجیت از حجیت خبر اما همون خواهد اگر از یک کسی دو تا مطلب نروش یک کسی رو یک مطلب رو در نفر بیست نفر نروش یک کسی یک مطلب یک نفر اونی که در نفر بیست نفر این اینه. نه ترجیح حجیت مراد اینه ترجی اگر یک مخلی رو چون در این سؤال امران نهند تو حالان شاهد تو دارد شوید دلیل بوده در کوفه از امران دو جور مخلی ده نفر یک مخلی رو نهند کنم یک نفر مورد اینجا نه که این نفر نهید باشیم ممکنه سرم باشیم موسی زراره زراره از امران صالح یک مخلی از امران صالح من یک آرام این دخل رو باشیم یعنی نه که مراد مقایسه اون خبر دختا با یکی باشه و ترجیح ما به اون حجت این حجت نیست دوران و عمر بین حجت بلا حجت اینشالا خواهد آمد که اگر دوران و عمر بین حجت بلا حجت شد این اصلا تعارض نیست اصلا معنی تاروزی که هر رو حجت باشد این قاعده که اولویت اینه که ترجیح هم همینطور مسلکه ترجیح یا اینطوری میشه که هر دو عین صحت حجت هستند، خود یکی رو ترجیح میدین. اما این مسلکه که ما در حدیث داریم این بحث شناخت حجت اندالیته به علما حاذیا. حاذیا یعنی عاضی کمیته حجت لاحیه. ما عقیده که این حدیث ناظر است به یک فهم عقلایی در باب وجوب حجیت تابعی رو که دیناه و مثلا اون رو اون اون خبری که یک نفر نقل و اون باشه اون قضیتشون نیست این خبری که در نظر ما قرار نونده مضمون حدیث این این راستی به نداره معنای هست اجماع, اجماع علماء این معنا راستی به نداره اصلا اینکه وقتی یکی ده اون هم پنجتا اون پنجتا بودشه اون اینکه اصلا بی در اشار اصلا اون باید داره کنا حجت هست نه اینکه حجیت داره این برش موجه وقتی این در حقیقت باید اگر تعلیم رو با شرقی بگیرین لاردتی ازادی بگیرین و لاردتی تحبات شرقی بگیره. اینجور باید بگیرین بگیرین مثل آره خوی آره خوی هم این گفتن که شما یه حرفا حکایت اینه که تعبدن اینجا نمیگه این این عقلاییه عقلی نیست این سیره عقلاییه که اگه ده نفر این مسئله‌ای که حرکتت قوالا رو قبول داره حالا در مقابل 1 نفر گفتم چه ولیش نگا میگن به این 1 نفر سن ما میگن شما فهمیدین کار اون 2 نفر میگن حجت داشتن حجت این بر او مرجع حالا در که ظهورش ما بودیم وای این رو به عنوان محجهیتی شعرق درستم که شعرق درباری خجه ما اصلا نیمیم حدیث ناظر به, به ترجیب نیست ناظر به ترجیب نیست ناظر به واقع تا نیست اصلا کلا ناظر نیست با تا آرز. که آیا؟ آره و از توضیحاتش این شده هر که من اجمالش که گفتم داری که که نیم سکتیم اصلا در کلام ممکنه که تو ممکنه این کتابی هست و چی و... بیان ساده مال ملا سلطان علی برابادی معروف حال این گنابا دو برمید این در تفصیل مرآن چهار در این درگاه این مبارکه داری کتاب داری بفیخ و, و هم در در منطقیه و در کتب عجبی احتمالات زیادتن ذاری که کتاب خورد ذاری کتاب که هلی کتاب عرص بیانی ها بده لاره بفی خبر اول لاری فیه هودم چند جور کنده شده لاره بفی هودم للمتقین خبر دوه هودم خبر للمتقین یه خبر باز هودم للمتقین با هم خیلی ادعا احتمالات زیادی به حسب وجوه اعراق شده این در این کتاب دیدم من جایی دیره ایدم از این به نخل خدا دیدم همون نکنده میشه مجموعی احتمالات اعراب رو در همین آلیه یک میلیون و و هزار احتمال ذکر کرده در احتمالات مقضاق و خبر و عقبیات و قبر دردر خبر و احتمالاتی در اعراب و فقط همین هایی واحده عرصت کنیم در از این که گاغای انسان در درد کلمات احتمالات, احتمالات زیاد داده میشه من ها دردام این بود که این ربارس مبارکه همسی با برشمان هم. یه دو دیگه دوره در ترجیح نه یه دیگری در ربایات ما یکی دو مورد من دیدم زیاد ندیدم که ارمان قد تفکر کل مال قرار ما انجام که در حکم فدی آمده خیلی شبیه عبارات مالک در موثقه یک مورد نشد دیدم چرا دیگه دو تا باشه این به درد وقت اجماع کنید موارس اینقدر کمه که ارزش به اصطلاح بحث علمی نداره این دو تا یکی دو موقع در روایات که در عبارات علمای معاصر به این معماد داریم مثلا اگر آنماه باشن در کتاب میراث آمده و آنهای استاد مرماه کوی تو موجم رجال حدیث توی ترجمه موسفل در جده نونزه همه عبارت ای اینه که در کتاب موسیم وقت و قال ها مالا خلافیق بین از خالمه داره این همون رسیم هذا کنی ازتباه بردیم ها دامر مالا اشیون نه هذا من مالا خلافیق بین از خالمه فرق من فرق ما تا طرف کنیم این من ما چند داریم این یعنی فرق فرقی که در واقع اجماع که خوده انصافاً این هم ما چند داریم یعنی از زیاد نیست که برای باز رو کنیم یعنی از بخشش در روایات ما چاران تو چنده تا تو روایات ما صورت ما مثاله توی حجت و توحید اینها یه مقدار محترام روایات داریم که از بخش اجماع وانوان زیر بنابیه بخش های استفاده شده مثلا خاندار اون ملافه را بینام مختلف اون به اینکه تو به قرآن رجوع کنیم حالا اگه با قرآن رجوع کنیم تو بکنیم یکی تو بکنیم شای بکنیم آیا با اختلاف را مراجع کنیم یا خدا باید کسی به درار دیکنیم اختلاف رو برداره این رو ما تو به بایدات سیاد این رسمت آخری چند شدیم؟ رسمت آخری رو ما شده لکن خیلی مسائلی که اجماع رو زیاده چندان نمیگذره میتونم بعد طول میشتم یعنی اجازه شما بکنم بذارم این رو ما داریم ما در بحث دیماهی که در اهل روایات اون دوچار اندامی لکن خیلی می‌کنه من اینا رو مجبر اندرونی هم درکی بودیده هر از اون نظر و لکن هم داریم تا چهار مورد رو در روایات این شو روایات احتجاجیه نسبتاً زیاده این این قسمت که به اجماع تمسخ شده برای مسئله مثلاً علمی مثلاً این مقدار اتفاق ما با شماست پس بنابرای با چی کار بکنیم؟ این, این داریم ما نه بخص فکری بحث, بحث عقائبی بخص کلامی و یه نمونه واضح تر چینا بخواهیم بخونی که این تحدیر لاسشم و امت علا سر وارد شده و دیگه هم فیدا تو من دیگه آن نگاه کنم در این کتاب درخار جلد پنج اصلا این معروف در کتاب عبدالماعات جلد پنج هم بخواهیمشون هست هر دیگه هم یک جمع کرده سفته 20 از کتاب احتجاج تبرستی نشاری کرده یک نامی در باره معنای امرون بین امرویم جب و جبرو سفیز و آهالی احواز در کتاب مرمونه احتجای درستات مرسل آنید بله فقال علیه السلام اجتماع اصل امت و قاتبتن ل بین هم فیداره اندر قرآن حق و لاردتی این ها همه افرقه اسلام نبولیه ففون فی حالت الاجتماع در قصف اینجا اگر اجباق کردن اجماعشون هم بریم این تعاویر رو ما جدیه نداریم منحصه در همین هست و در اولای در برمی سروان هم ففون فی حالت الاجتماع علی مصیبون که این همه ارزشای اجماع حالا که این همه اجماع کردن اینا مصیب حتی این تعبیر که من جیت منیش شماله که بحث بذار کردن غیر از این رساله است که نامه‌ی من بن سوزو امام حادی رساله بحثی کلامی داره من نمی‌خوام ایشون چیزی داره بشیم من این رساله و علا تسلیح ما انزل الله مختدون به قدرت الهی این مسئله رو گفتن چرا به قول نبی لا تشتن و قومتی علا ضراره این ات اه رو ما اینجا داریم میدونم عرف میکن. اینجا ما این داریم لا تکش معمون م که قرارانه اگر ک ننظر کتمما یاتون باشه و بحثشون من منسجم صحبت میکنم از خرطبی لا ما در ضات منصده من نیدار. من احتمال از در زمان انجام مشهور در درنگ گفت که هم هااک شد اینجا داریم تا بر دی یا انا ازعل عما به خرج برزار ها بعدا او حق شبیه همین برچهش که صندبت مطرح اجاع م کردن؟ و ع کردن فها را لا ماتحولهایی اما خیلی عجیب اماما می که جاهی میگن که اجماع میشه کتاب رو تفسیر بزنه برداره این نیست لاما حالا معمال حدیث لاما تحضلق الجاهلون و لاما غالق المعاندون مد... ات... ات... ابطال حکم الكتاب و اتباع حکم الاحادیث المزردره حالا معلوم نیست که اینجا چی باشه و روایات المزخفه و اتباع الاحراء المردیه المهرکه تلتی تو خالب و نسل کتاب ظاهران امام فرسان دید این على قربل صدورش اینه و تحریک ال الوازهات و نهنه صلی الله ان و دینا الى رشاب بس پنیزه روی شکل در کتاب ببینید که در کتاب به تصدیق خبر و تحقیقی تا این کلّ تصاویف تومین و آرده توم به حدیث منازل آحادیث المذنبه، در انکار و این شد پس امام فرمود که الله و اساق ک خبره. ما آرده تهیه هومن مثل خبر المجمعه من رسول الله صلّا الله عليه علمی مستقل کنفی کن خلیفت این تفاقه لا باز هم اگه ده خط حدیث لا تکسبان اممدی حلاز رو کشی در مسئله تلامی خیلی عزیبه مراد امام حادی بعد هم چه امام حادی حدیث که اما من میخواهم ایجا و در همین جلده ده ها در صفحه شست و هرشه سفته دیست بود آن اگه سفته شست و هرشه باب اون آخر رساله اول حسن سالست که رد علا اهل جبر و من همون دقیقه این رساله را از توحقه الاغون نرمون کنن این رساله نقل توحقه الاغون روش 15-16 سفر خیلی محسنه اونی چی که از احتجاج نرد شد سفر مختصر مثل بگو خیلی مختصر صفحه تا 25 اما اون چیه در تحقیل و قولت توضویشون هست. اما یه مقدارش بین همینه بله بعد و قد اشتم این 5-6 سفر اولش نیز از داره اما خود من خودم این بهاد اختلاف به نصفه مدام سرکنه معلوم نیست که احداما کتاب تا حفظ عبود کتاب احتجاج ترخیص تا حفظ باشه این روکن نیست احتمالا نصفهی این این کم محصر شرمان و, و هر حال تنها حدیثی که ما داریم در میراش خودمون که این حدیث دارتش ممکه علا زلال رو و توضیح داده و تحبیل کرده کارگر امتی ما کردن حجتن همین حدیثی سلام خوندن از موجود که حدیث روم و کرد و در مصادر معروف ما متعصفانه وجود نداره ولی و کلام سلام و